به نام فروزنده ماخ و ناخید و مهر هموطنان این ششمین روایت من از شاهنامه فردوسی است ستایش خداوندی را که بدون خواست او چیزی پدید نخواهد آمد و کاری انجام نخواهد پذیرفت و دیگر سپاس بر شما که گوش به روایت این راوی میدهید صدای مهرامیز. و دست خط چشم نوازتان مرا توان می آنچه آن چه است توجه جوانان ایران چه در داخل و چه در خارج از میهن به شاهنامه این میراث پرشکوه ملی است بزرگترین پاداش من های سرشار از احساس و لبریز از روح میهن پرستانی آنهاست که گویی جان تازهی به جسم و روح من می بخشد من مرا بران می که روایت شاهنامه را ادامه دهم خداوند جوانان ایران را برای ایران و ایران را برای همه ما پاسدار باشد هموطن شما سعید قائم مقامی یه از شاهنامه از عشق زاد و رودابه ما شما سخن گفتم عشقی حراسناک چرا که رودابه دختر مهراب پادشاه کابل بود و ما از مازماندگان زهاک تازی این عشق هنگامی آغاز شد که زاد به هند و کابل سفر کرد به‌دیشه هنگامی هایش سرکش شد که شبی با چمند از دیوار کاخ رودابه بالا رفته او را پنهان دیدار کرد و با او پیمان مهر و عشق و وفاداری بست در پی دیدار زال برای پدرش سام که در گورگساران و مازندران سرگرم جنگ بود نامه‌ای نوشت و از عشق خود به رودابه پرده برداشت سامخشگین از ستار شناسان آینده پیوند زال و رودابه را برسجود کرد و آنها رو خبر دادند که این زناشوی و پیوند مبارک و فرخنده است چرا که خداوند به زال و رودابه فرزندی خواهد داد که سالیان دراز خواهد است و بزرگترین پهلوان روی زمین خواهد شد از سوی دیگر کابل غرق در وحشت و دلنگرانی است اگر منوچه شاه از این عشق آگاه شود خاک کابل را به توبره خواهد کشید و خون بیگناهان بسیاری ریخته خواهد شد دیری نمی پاید که خبر عشق زال و رودابه به کاخ پادشاهی ایران می رسد شاه اخشاه خشبگین موبدان بزرگان و دلاوران ایران را فرا میخواند و بانها با می آن‌ها ایران ایرانی را که به هزار دشواری و جنگ و ستیز در برابر دشمنان پاسداری کرده است به خاطرش عشق زال به رودابه برباد نخواهد داد. چه ممکن است از پیوند و ازدواج این دو فرزندی پدید آید که تمایل و گرایش به خاندان مادر و ناگزیر به زهاکیان داشته باشد. و در پی به آوردن تاج و تخت ایران برایت و ایران را به آتش جنگ و ویرانی و آشوب کشد پس آگاهی آمد به شاه بزرگ زه مهراب و دستان و سامه سطورگ زه پیوند مهراب و از مهرزال و آن ناهمالان گشت همال سخن رفت هر گونه با موبدان به پیش سرفراز شاه ردان چون این گفت با بخردون شهریار بر ما شبد زین دو جم بوزی کار چون ایران ز چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم به رای و به جنگ نباید که برخیر و بر اشق زال حمال سرفگند گردد حمال چون از دخت محراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سو ناز گوخر ما بود و تریاک با زهر همتا بود اگر تا گیرد سوی مادرش زه گفته بد کرد کردد سرش کند شهق ایران پراشوب و رنج به دو بازگردد مگر تاج و گند منو با خود نمیشد چاره این دشواری جلوگیری از این پیوند در دست سامه بزرگ است پس بس به پسر بزرگ خود شاهزاده نوزر فرمان می هرچه هر چه زودتر خود را به اردوگاه سام رسانده و از او بخواهد بر سر راه خود در بازگشت از گرگساران به زابولستان به پای تخت بیاید چه پادشاه ایران خواستار دیدار اوست شاهزاده نوزر به شتاب خود را به اردوگاه سام رسانده پیام پدرش منو شاه را به او می‌دهد. و سام با شادمانی، با سپاهیان پیروز خود و اسیران جنگ گرگساران به سوی آمول پایتخت پادشاهی ایران حرکت میکند پایتخت ایران و پیشا, پیشا همه پادشاهی ایران منوچهر از سام دراور و پیروز استقبال میکند و هنگامی که به کاخ پادشاهی میرسند منوچهر شاه سام را در کنار خود می نشاند و از چگونگی جنگ گرگساران و مازندران از او جویا می شود منوچهر برخاست از تخت آج زیاغوت رخشنده بر سرش تاج برخیش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنباختش و آن گرگساران جنگاوران وزان دیوان مازندران بپرسید و بسیار تیمار خرد سفه بود سخن یک به یک یاد کرد سام چگونگی نبرد را به منوچهر شاه گزارش کرده به شاه آگاهی میدهد که فرمانده سپاه دشمن نامش کاکوی و نبیره سلم و سوی مادر از تبار زهاکیان بوده است انگاه برای پادشاه شهر میدهد که چگونه در پهنه نبرد رو در روی کاکوئ قرار گرفته است و پس از جنگی دهشتناک با کشتن او 300 هزار سپاهی دشمن را پراکنده و فراری داده دوازده هزار تن از آنان را کشته و هزار تن را اسیر گرفته است. سپاهی که سگسار خوانندشان ملنگان جنگی گمانندشان همه پیش من جنجوی آمدم چنان خیره و پوی پوی آمدند نبیره جهاندار سلم سطور به پیش سفاخندر آمد چکم جهاندوی را نام کاکون بود. یکی سرف بالای محروم بود به مادر هم از تخم زحاج بود سر سروران پیش او خواهد سپاهش بکردار موه و ملخ نبود دشت پیدا نکوب و نشخ تو برخواست زن لشگر گرشنگر رخ نامیاران ما گرشن زد من این قرص یک زخم برداشتم سپه را همون جا ببزاشتم خروشی خروشیدم از پشت سین که چون آسیا شد بر ایشان سبید دل آمد سپه را همه باز جا سراسر زیر رز کردن را چو بشنید کاکول آواز من چنان زخم کوحال سرباز من بیامد به نستی من جم ساز چو پیل با کمندی درست مرا خواست کارت به خم کمند چو دیدم خمیدم زراق گزم کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پلاد و تیر خدم عقاب تکاور برنگیدم چون آخش بروبر همید شد. گمانم چنان بود به سندان سرش که شد دوخته مغز با مقبرش نگه کردم از چون پیل ما برآمد یکی هندی به دست آنان آمدم شهریا را گمان کسو خوب زنهار خوابت بجاید بگم در شتاب منم در درنگ همین جستمش تا که به چند چون آمد گه مرد جنگی فراز من از چرمه چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلی ززین بر سستم به کردار شیر زدم بر زمین بر چو پیل یان پراهند بر دست و گیچو <عصدق> افکنده شد شاه از آن گونه خارد سپه روی برگاشت است كاسان <tört> نشیب و فراز و بیابان و کو به هر سو شدند جمن همگروه سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدن در شما سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند سیصد هزار که سنجد بدندیش با بخت تو ز پیش پرستنده تخت تو پادشاه <تصفيق> ایران، بزرگان و دلاوران ایران سام را فرابان ستایش کرده به اختخار او نیمانی بزرگی برپایش شده پادشاه <تصفيق> ایران آنگاه از نگرانی خود از خیبند زال و رودابه با سام سخنده سپس او فرمان می به هندوستان و کابلستان لشگر کشیده تمامی آن سرزمین را که قلم روی محرام بازماندی زه است با خاک یکسان سازد پادشاه به سام می‌گوید تا روزی که از خاندان زهاک کسی بر روی زمین زنده است ایران در خطر خواهد چون این گفت با سام شاه جهان از ای در برو با گزیده محان به هندوستان آتشان در فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد استوره ها که او ماند از تخمه اجده زمان تا زمان زو برایت خروش شبد رامگیتی پر از جنگ و جوش هران کس که پیوسته او ببند بزرگان که در بسته او بووند سر از جدا کن زمین را بشوی ز پیوند زحاک و خیزان او چون این داد پاسخ سوخ ای دون کنم که چین از دل شاه بیرون کنم به تخت به روی برا نام بر آن بر مهر و انگشت بود سوی خانه بن سر با سپاه بر باد پایانه جلیدن را آنید که با دهشتناکترین های زندگی خود روبروست برای لشکرکشی به کابل خود را به زابل میرساند او باید سرزمینی را بسوزد و ویران کند که میزبان پسرش زال است زال در کابل است که به او و محراب خبر میدهند که پادشاه ایران به سپه تار سام دستور یرش به کابلستان را داده است زال شرمنده از محراب و همسرش سیندخت و دلداده رودابه خشکین با انها می گوید هیچ کس حتی پدرم سام آسیب رساندن به آنها و کابل را نخواهد داشت مگر آنکه نخست سر او را از تنش جدا کرده باشند و سپس با شتاب برای دیدن پدر به سوی زابل حرکت میکند. به مهراب و دستان رسید این سخن که شاخ و سپه بود فکنده خروشان ز کابل همی رعد زال فروحشت لفج و براورد یال همی گفت اگر اجده های بیاید که گیتی بسوزد به دم چو کاول ستان را بخواهد پسود نخستین سر من بباید درود و پیش پدر شد پر از خونجگرد پرندیش دل پرز گفتا سر سال در آستانی کاخ پدر از اسب پیاده شده خروشان به داخل تالار کاخ. خشبین و گردالود و خسته از پدر شکبه می که گناهی ندارم جزان که پسر تو هستم از کودکی بر من بیداد کردی و اینک که به مهر خداوند سختیها را پشت سر گذاشته و مردی دلاور شدم و یاری چون مهراب کابلی یافتم که نیز، دلاور و سربتمند و خردمند است و در کابل در انتظار آنم که تو برای سرکوی دشمنانت از من یاری بخواهی از مازندران و گرگساران آمدهی که خانمان مرا میران کرده آرزوهای مرا برباد دهی نخوست مرا بکش و آنگاه سخن از حمله به کابل در میان آور ندانم همی خیشتن را گناه که بر من کسی را بدان هست راه. مگر آنکه سام هستم پدر دگر هست با این نژادم هنر ز مادر بزادم بینداختیم به کوهندرم جایه ساختیم نگه باره دیدم نه پستان نه شهر نه از هیچ خوشی مرا بود بعد ببردی به کوهی بیفتندیم دل از ناز و آرام برکن تو را با جهان آفرین است جنگ که از چه سیاه و سپید است رنگ کنون کم جهان آفرین پرورید به مهر خدایی به من بنگرید هنر هست و مردی و تیغ یلی یکی یار چون مهتر کابولی ابا گنج و با تخت و گرز گران ابا رای با داد و تاج سران نشستم به کابل به فرمان تو نگه داشتم راه و پیمان تو که چون کینه جویی به کار آیمت درختی که کشتی به بار آیمت مازندران حدی این ساختی هم از گرگساران به دین تاختی که بیران کنی خان آباد من چون این داد خاطی همی داد من من اینک به پیش تو استادم خانه بنده خشمت تو را دادم با میانم به دون امکان ز کابل ما پیمای با من سخن صامد <تصفيق> ال پس از شنیدن سخنان زال به او میگوید راست گفتی من همیشه به تو بیداد کردم تیزی مکن و خشمگین مباش من اینک به پادشاه ایران منو منوچهر نامه‌ای مینویسم و تو خود این نامه را به نزد پادشاه خواهی بود. باشد که به یاری خداوند کار تو سامن گیرد. سپخ بود چو بشنید گفتا رزال برافراخت گوش و فرو برد یال. به دو گفت آری همین است راست. سبانت به راستی پادشاه است. همه کار من با تو بیداد بود. دل دشمنان بر تو برشاد بود مشو تیز تا چاره کار تو بسازم کنون تیز بازار تو یکی نامه فرمایم مکنون به شاه فرستم به دست توی نیخوا سخن هرچه باید به یاد آورم روان و دلش سوی داد آورم اگر یار باشد جهاندار ما به کام تو گردد همه کارم سام بزرگ به پادشاه ایران نامه می نویسن. در این نامه نخست از خداوند ستایش می بانگا پادشاه ایران را می ستاید. و سپس به یاد شاه می‌آورد که او دیگر پیر شده است چه ساله شده است و همه عمر خود را در خدمت ایران و ایرانیان شمچیر زده و با جادووان و سرکشان و دشمنان ایران جنگیده است سام به شاه می نویسد او بود که چون گرز برداشت آب روی گردان مازندران دیخته شد باز به یاد شاه می آورد در کشف جان بر کف با اجدهایی که هیچ کس یارای جنگیدن با او را نداشت ستیز سحبی می کرده است یکی بنده من رسیده به جای به مردی به شستندر آورده پا همین گرد کافور گیرد سرم چون این داد خورشید و ماه هفت سرم به بستم میان را یکی وار، و با وان ساختم کار سار پی پیچ و اسبختگن و دار چون من کس ندیدی به گیتی سوار به شد آب گردان ما سندران چون من دست بردم به گرزگران چون آن اجدها کوز رود کشف برون آمد و کرد گیتی چو زمین شهر تا شهر پهنای او همان کوه تا کوه بالای او جهان را از او بود دل پر حراس همین داشتندی شب و روز پاس هوا پاک دیدم ز پرندگان همان روی کشور ز درندگان ز تفش همین پر کرکس بسوخت زمین زیر زهرش همین بر نهنگ دژم بر از اصحاب همان از هوا در کشیدی زمین گشت بی مردمو چهار پای جهانی مرور را سپردند جا چو دیدم چند در جهان کس نبود که با او همین دست یا رست سود به زور جهاندار یزدان پاک بیفگندم از دل همه ترس و باک میان را ببستم به نام بلند نشستم بر آن پیل پیکر سمند در اون گرزه گاف سر به بازو کمان و به سپر برفتم به سان نهنگ دژم مرا تیز چنگ و ورا تیز دم مرا کرد پدرود هر کوشنی که بر اجده ها گرز خواهم کشی. رسیدم شد دیدم چو کوخی بلند کشان موی سر بر چون کمند زبانش به سان درختی سیاه زفر باز کرده فکنده براه چو دو آبگیگش پر از خوند و چشم مرا دید و قرید و آمد به خشم گمانی چنان بودم ای شهریار که داورت مرا آتش اندر چرخاند جهان پیش چشمم چو دریا نمود به عبر سیاه شده تیر دو ز بانگش بلرزید دروغ زمین ز زهرش جهان شد چو دریاوی چین بر بر زدم بانگ بر سان چنانچون چون باید کار مرد دلیم یکی تیر الماس پیکان به چرخندرون راندمش میدرن چا شد دوخته یک کران دهانش به مانده شگفتی به بیرون زبانش همان در زمان دیگری همچنان زدم بر دهانش بپیچیده زدم بر میان زفرش برا آمد همین جوش خون از جگرش چو <تصفيق> تنگندر آورد با من زمین برا هختم این گافت سرگرزکین به نیروی یزدان کیهان خدای برنگیختم پیلتن راز جای زدم بر سرش گرزگ برو کو باریت گفت سپید شکستم سرش چون سر زنده پیر برو ریخت زوزه چون آب نیم به زخمی چنان شد که دیگر نخواست ز مغزش زمین گشت با کو راست تشفرود پر پرخون و زرداب گشت زمین جای آرانش خواب گشت جهانی بر آن جنگ نزاره بود ته آن اژدهها زشت پتیاره بود مرا سام یک زب از آن خواندند جهان زر و گوهر برفشاندند کنون چند سال است تا پشت زین مرا تختگاه گاه است و اسبم زمین همه ساران و مازندران بر او راست کردم به گران. نکردم زمانی بر اوبون یاد تو را خواستم راد و پیروز و شاد کنونان بر افراخت یال من همان زخم کوبند کوپال من بران هم که بودم نماند همین و گردگاه هم خمانت همان کمندی بی انداخت است دست زمان زمانه مرا گونه ببست سپردیم نوبت کنون زال را که شاید کمرمند و کوپان را یکی آرزو داردن در نهان بیاید بخواهد ز شاه جهان یکی آرزو کن به یزدان نکوست کجا نیکوی زیر فرمان اوست نکرد این بیرای شاه بزرگ که بنده نباید که باشد سطور سام در نامی خود به من اون چر شاه می پادشاه میداند که انگام آوردن زال از کوه با او پیمان بستم که آرزوهایش را برآورده سازم. و پادشاه میداند که زال پرورده مرغبیش نیست. پس شگفتین نباشد که با دیدار نخستین زن، آن هم روداب شاهزاده خانم کابلی چنین عاشق و شیدا شود و بگوید اگر او را در آمول پایتخت تخت پادشاهی ایران بدار کشیم بهتر از آن است که به سرزمین محبوبش کابل لشکر کشیم همانا که بازال پیمان من شنیده است شاه جهان بان من به پیش من آمد قُرص خونرو خان همی چاک چاک آمدش زستخان مرا گفت بر دار آمل کنی سزاتر که آهنگ کابل کنی چو پروردی مور باشد به کو فکنده به دور از میان گروه چنان ماه بیند به کابل ستان چو سرو صحی بر سرش گل ستان چو دیوان گردت نباشد شگفت از او شاه را چین نباید گرفت کنون رنج مهرش به جا رسید که بخشایش آرد هران کش بدید سبس رنج کودید بر بیگناه چنان رفت پیمان که بشنید شا گسی کردمش با دلی موز چون آمد به نزدیک تخت بلند همان کن که با مهتری در خورد تو را خود نیاموخت باید خرد سام در پایان نامه به پادشاه ایران می من منزال را روانی درباران پادشاه کردم. پادشاه همان گونه با او رفتار کند که خیشتن می دانند. زال دستان انگاه با هزاران امید و اشتیاق نامه را برداشته با شتا راهی پایتخت ایران می شود چون نامه نبشتند و شد رای راست ستت زود دستان و پای خواست بیامد آمد به اندر آورد پای بر آمد خروشیدن کفنا و در کابل همه در ترس و اندوه به سر می مهرا پادشاه کابل خشمگین از دخترش رودابه به همسرش سیندخت میگوید مگر نه اینکه پادشاه ایران به خاطر پیوند زال و رودابه بران شده است تا کابل را ویران کرده جلوی این پیوند و را بگیرد من اینک هم تو و هم دخترمان رودابه را خواهم کشت تا منو که شاه برای ویرانی کابل و کشتار مردم بیگناه ما نداشته باشم سیندخت به همسرش میگوید: من اندیشه یا با تو در میان میگذارم گذارم که اگر به کاربندی نیازی به کشتن من و دخترت نخواهی داشت من جان خود را به خطر می و تو چشم از زر و گوهرهای خزانه خود برگید تا آنها را برداشته برای سام پیش کش برم چو در کاول داستان فاش گشت سر مرزبان پرز پرخاش برا شفت و سیندوخت را پیش خاند همه خشم رودابه بر وی براند چنین گفت اکنون جز این رای نیست که با شاه گیتی مرا پای نیست که آورمت با دخت ناپاکتن کشمزارتان بر سر انجامن مگر شاه ایران از این خشمکین برا ساید و رای گردد بریم بدو گفت سیندوخت ای سرفراز و بد کت به خونم نیاید نیاز مرا رفت باید همین پیش سام کشیدن این تیغ را از نیام ز من جان و رنج و ز تو خواسته سپردن به من گنج آراسته بدو گفت محرام اینک کلید قم گنج هرگز نباید کشید پرستنده و اسب و تخت و کلا بیارای و باخیشتن بر براه مگر شهر کابل نسوزد به ما چو پش شد شد برخروزد به ما مهراب پیشنهاد سیندخت را میپذیرند و کلید گنج های ارزش خود را به همسرش میسپارد تا هرچه پرعرزشتر برای سام هدیه برند سیندخت چنین میکند انبوهی از پرعرزشترین جواهرات و گوهرهای کابل کمیابترین فرشها و جامحا و پارچه های زربخت فراهم کرده به سوی زابل درا در زابل سیندخت آنکه که نام خود را بگوید خواستار دیدار سامه بزرگ می پس آگهی میدهند که از کابل کاروانی پرشکو سرشار از هدایای شاهانه رسیده است و بانوی پرشکوه و روی همراه با این هدایا از مهراب شاه پیام آورده است سام سیندخت را میپذیرد و چشمش از آن همه هدیه شاهبار خیره میماند با خود نمیاندیشد چگونه است که از کشوری که این همه سروت دارد زنی به پیام آوری فرستاده شده است اندیشه دیگر سام این است که اگر این هدایا را از شاه کابل بپذیرد منچه شاه از او دوشم و خشمگین می شود و اگر هدایا را برگرداند زال دلازرده خواهد شد فرود آمد از عصب سیندخت رفت به پیش سپه بود خرامی تفت زمین را ببوسید و کرد آفرین عبرشاخ و بر پهلوان زمین نسار و پرستنده و اسب و پیل رده برکشیده زدر تا دو یک ها یک همه پیش سام آورید سر پهلوان خیره شد کان بدید پرندیش بنشست برسان مست بکش کرده دست و سرفکنده پست جایی کجا مایه چندین بود فرستادن زن چاهین بود گر این خواسته زو پذیرم همه ز من گرد داشفته شاهرمه و اگر باز گردانم از پیش زال بر به کردار سیمبر یال براورد سر گفت چین خواسته غلامان و پیلان آراسته شویدین به گنجور دستان دهید به نام بوت کابلستان دهید صام هدیه را میپذیرد و دستور می دهد این هدایا را به نام رودابه سیبا روی به گنجور نگهدارنده گنج خایه زال بدهند سیندخت که هنوز پاش نکرده است که ملکه سرزمین کابل است شادمان که سام بزرگ او و پیشکش خواهش را پذیرفته با سام سخن می گوید و به سام می گوید اگر کسی گناهی مرتکب شده پادشاه کابل مهراب است و نه مردم بی گناه کابل از خداوند بترس و خون مردمان کابل را نریست چون این گفت سیندو با پخلوان با رأی تو پیر گردد جوان بزرگان ز تو دانش آموختند به تو تیره کیهان به مهر تو شد بسته دست بدی به گرزد گشاده رهی ایزدی گنه کارگر بود مهراب بود زه خون دلش میجه سیراب بود سر بیگناهان کابل چه کرد کجا اندر آورد باید بگرد پرستنده خاک پای همه شهر زنده برای تواند از آن ترس کوخوش و زورا فرید درخشنده ناهید و حورا آفرید نیاید چون این کارش است و پسند میان را به خونه برحمن مبند سام که است بداند این زن خوب روی و خوش سخن کیست از اون پرسد آیا تو از کنیزکان پادشاه کابل مهراب هستی یا از نزدیکان و همسران او؟ به من جز راست مگو و دیگران که بگو بدانم رودابه چگونه چهره و چگونه خوی و خردی دارد به چه کس شباهت میبرد و چگونه شد که زال عاشق دلخسته او شد به دو سامیل گفت با من بگوی چت بپرسم بهانه مجموعی تو مهراب را کهتری بر حماد مران دخت او را کجا به روی و به موی و به خوی و خرد به من گوی تا با چند در خورد ز بالا و دیدار و فرهنگ او بر آن که دیدی یک کا بد... به دو گفت سین دخت ای پهلوان سر پهلوان و پشت گوان یکی سخت پیمات خواهم نخوست که لرزان شود زوب بر او بم و روست که از تو نیاید به جانم گزد نه آن کس که بر من بود ارجمند مرا کاخ و ایوان آباد هست همان گنج و خیشان و بنیاد هست چو ایمن هر هرچه گفتی بگوی بگویم بجویم بدین آب روی نخفته همه گنج کاولستان بکوشم رسانم به زاولستان گرفت آن زمان سام دستش به و بن باخت و پیمان ببست چو بشنید سین سیندخت سوگند اوی همان راست گفتار و پیوند اوی زمین را ببوسید و بر پای خواست به گفتان چند در نهان بود راست من خیش زه ها پهلوان زن گرد مهراب روشن روان همان مام رودابه ماه روی که دستان همی جان فشاند روی همه دودمان پیش یزدان پاک شب تیر تاب برکشت روز چاک همین بر تو برخاندی آفرین همان بر جهاندار شاه زمین کنون آمدم تا هوای تو چیست سکاول کاول تو را دشمن و دوست کیست اگر ما گناهکار و هریم بدیم پادشاهی نه اندرخوریم من اینک به پیش تو هم مستمه بکش کشتنی را و بندی ببند دل بیگناهان کاول مسوس که بس تیر روز در آید بروز سام با شگفتی در میابد که این زن زیباروی و خوش سخن کسی جز همسر محراب پادشاه کابل و مادر رودابه محبوب پسرش زال نیست به او میگوید من پیمان خود را با تو همیشه نگه خواهم داشت تو و خانوادی تو و مردم کابل در امان خواهید بود و بدان با آنکه شما از نژاد و خاندان زهاک هستید با این همه با پیوند ازدواج زال و رودابه همراه هستم را که این خاست خداوند است و با خاست خداوند نباید سر جنگ داشت از سوی دیگر بدان پسرم زال را با نامی به نزد پادشاه ایران فرستادم و فراوان امید دارم پادشاه با دیدن جوانی که پرورده مرغی است و اینک عاشق شده خندان شده در خواستش را خواهد پذیرفت سخن سخنها چو بشنید از او پهلوان زنی دید با رای روشندوان بروخ چون به و به بالا چون سرد میانش چو قرب و برفتن تزر چنین دا پاسخ پیمان من درست است اگر نکسلت جان من تو با کاول و هر که پیمند توست به چادان دل و تندروست بدین نیز هم داستانم که زال به گیتی چون رودابه خواهد همان شما گرچه از گوهری دیگری همان تاج و رنگ را در درخورید چنین است که ایتیوزی ننگ نیست اما کردگار جهان جنگ نیست یکی بر فراز و یکی درنشیب. یکی با فزونی یکی بانهیب یکی از فزایش دلاراسته ز کمی دل دیگری کاسته یکی نامه با لابه و دردمند نوشتم به نزدیک شاه بلند به نزد منوچه شد زال سر. چنان شد که گفتی براورد پر. به زین اندرامت آمد که زین را ندید. همان نعل اسبش زمین را ندید. به دین زال را شاه پاسخ دهد. چو خندان شود رای فرخ نه. سامانگاه به سیندوخت میگوید به کابل برگرد و همسرت مهراب را از این همه آگاه کن سپس هرچه در کابل دارد به سیندوخت میبخشد و او را همراه دویست مرد نگهبان راهی کابل میکنند و را سامیل گفت برگرد و راو بگویان چه دیدی به مهراب گاو سزاوار او خلعت ها راسته. ز گنجان چه پرمایه خواستند به کاول دگر هر هرچه بود ز کاخ و ز باغ و ز کشت و درود دگر چار پایان دوشیدنی ز گستردنی هم ز پوشیدنی به سین دخت بخشید و دستش به دست گرفت و یکی سخت پیمان ببست پذیرفت مرد دخت اوزال را خداوند جوبین و کوپال را سرافراز راز گردی و مردی دویست بدو داد و گفتش اکنون میست به کاول بباش و به شادی بمان از این پس مترس از بد بدگمان شکفته شدن روی پشمورد ما به نیکختری برگرفتند راه و اما بشنویده سای شب و روز بر پشت اسب دشت و کوه و صحرا و هامون را درنوردید تا به آمل پایتخت شاهنشاهی رسید. پادشاه ایران منوچهر او را در کاخ شاهی پذیرفت و زال نامه پدر را به پادشاه داد. منوچهر شاه پس از خواندن نامه سام بزرگ به زال نوید داد که به پاس خاطر سام آرزوی او را برآورده خواهد ساخت. بیامد بر تخت شاه حجمند. بپرسید از او شهریار بلند چون بودی ای پخلبان زاده مرد بر این راه دشخار با باد و به بهفر تو؟ گفتا: همه بهتری است. عبا تو همه رنج رامشگریست از او بستدان نامی پهلوان بخندیده شد شاد و روشن روان <تصفيق> چو برخاند پاسخ چنین داد پاس رنجم فضودی به دل بردراس. ولی ولیکن به این نامی دلپذیر که بنبشت با درد دل سام پیر اگرچه مراحه هست دلزیندوشم برانم نگندیشم از بیش و چم. بسازم برارم همه کام تو گر این است آرام و فرجام تو <تصفيق> پادشاه به زال نبید می دهد که با درخواست او همراهی خواهد کرد با این همه بران می شود تا از موبدان و اخترشناسان بخواهد که از اختران آینده پیمند زال با دختر پادشاه کابل را جستجو کند و چون چنین دستور می اخترشناسان سه روز سرگرم بررسی ستارگان می شوند، بانگاه شادمان به پادشاه مژده می دهند که از این پیوند و ازدباج فرزندی پای به پخنه زندگی خواهد گذاشت که سایان درازی خواهد زیست و در بزرگی دلاوری بی همتا خواهد شد که پشت و پناه ایران زمین به دو خواهد بود. از این دخت مهراب و وز پور سام گوی منش زاید و نیکنام بود زندگانیش بسیار مرد همش زهره باشد همش زور و فر همش برز باشد همش تیغ و یاد به رسم و به بزمش نباشد همان کجا باره او کند موی تر شود خوش، هم رسم او راجه گرد اقاب از برای ترگ او نگذرد سران جهان را به کس نش مرد. یکی برز بالا بود فرمند همه شیر گیرد به خم بر براتش یکی گور بریان کند هوا را به شمشیر گریان کند کمر بسته شهریاران بود به ایران پناه سواران بود پادشاه ایران از پیشگویی اخترشناسان شادمان می شود. اما دستور می چگونگی این پیشگویی را کسی نزد زال فاش نکند منوچه شاه بران است تا هوش و خردمندی زال را در آزمون بزرگی بیازماید پس او را به کاخ پادشاهی فرا میخواند. بزرگان و موبدان و پهلبانان ایران نیست در این نشست شاهانه حضور دارند منو شاه از موبدان میخواهد تا در برابر این برگزیدگان از زال پرسشهایی کنند و زال به این پرسشها پاسخ داده خردمندی و هوشمندی او بر همگان آشکار گرده چون این گفت پس شاق گردن فراز از این هرچه گفتید دارید راز به خاندان زمانزار را شهریار که از او خواست کردن سخن خواستار بدان تا بپرسند از او چند چیز سخنهای پوشیده در پرده نمیسید بدان از شش پرسش میکنند که بیشتر درباره گردش خورشید و زمین و پدیدار شدن ماه و سال و شب و روز است و دو پرسش آن درباره زندگی و مرگ که زال به شایستگی و درستی به همه آنها پاسخ می‌دهد. زال به این پرسش که آن کدامین کس است که خشم گنانه در بیابان و علفزاری ترخوش که روی دیدنی خای گوناگون را با داسش خون چنین پاسخ میده. یابانو آن ان مرد با تیز داس کجا خشکتر زود دل در یکسان همی بد وگر سازی سخن سازی نشنود دروگر زمان است و ما چنگیا همانش نبیره همانش نیا به پیر و جوان یک به یک نم گرن. شکاری که پیشایدش بش گرن. جهان را چنین است ها که جز ما را کسز مادر نزاد از این در درآید آید به دن بزرد. زمان زمانه برودم همی بشمارد زال میگوید انسان از در زاده شدن در می آید و از در مرگ بیرون می رود و زمان نفس های او را می شبارد. چو زال این سخنها بکرد آشکار از او شادمان شد دل شهریان به شادی یکی انجمن بر گفت شهنشاه گیتی زهازه بگفت یکی جشنگاهی بیا رازشاه چنان چون شب چهارده چرخ ماه کشیدند می ها جهان داشت سر میز گسانان زمین خیله شبی سر شاق و سروط تا سرودگاه بر همه میگوند زودگاه زال به نزد پادشاه بار می پس و منوچهر شاه اجازه می به سوی کابل باز کردند و به پادشاه میگوید که دلتنگ پدر سان است اما منوچهر شاه زیرکانه به او میگوید این در حقیقت میل و اشتیاق دیدار رودا است که سبب دلتنگ توست ندیدار سان و کابل شهر با این همه یک روز دیگر بیشتر نزد ما بمان چون برزد زبانه ز کوخافتا سر نامداران برآمد ز خواب بیامد کمروست زالد دلیر به پیش شهنشاه چون نرشید به دستوری بازگشتن زده شدن نزد سالار فرخ پدر به شاه جهان گفت ای نیچو مرا چهرسام آمد از دارزون چون بوسی در این پایه تخت آج دلم گشت روشن بدین برز و تاج دو گفت شاه ای جوان مرد گرد یکم روز میزد به باید شما ورا بو یه دختر محراب خواست دل عاشق <تصفيق> سام و کجاست پادشاه ایران قیمت از آینده پیمند زال و رودابه دلنگرانی ندارد و خیرد و خوش زال را نیز آزبوده است خواستار آن است که از زور بازوی زال آگاه شود و دریابد آیا زال چون پدرش سام و چون نیایش نریمان بر آزنده فرمان بر زابلستان و تکیه بر کرسی پهدوانی ایران هست پس دستور میدهد میدان کارزاری نمایشی آباره شد. بفرمود تا سنج و هندی درای به میدان گذارند با کرملافت. نیزه و گرز و و کمان برفتند گردان همه همان ها گرفتند به تیر خدنگ نشانه نهادند چون روز جنگ به تابید هر یک چیزی اینان به گرز و به تیر و به تیر و کمان خادشاه بران است که توانایی زاغ را در تیر اندازی و سواری و شمشیر و گرزگیری در برابر دیگر دلاوران خود در نبردی آزمایشی بسند نخوست پرتاب تیر و نشان زنی با تیر و کمان درختی گشند تنومند و در درمیان میدان است نشانه آن درخت گذاشته شده است. سال در نخستین آزمون چنان تیری بر نشانی آویخته بر درخت میزند که تیر از نرد شیر درخت تناورد می گذره. درختی گشن بود به میدان شا گذشته برو سال بسیار و نام همان را به مادی دستان سام برنگیر اصف و براور نام بذرد برمیان درخت سهیر گزاره شدان تیر شاخنجهیست همان در تای عصب یک چوب تیر بیانداخت و بگذاشت بر نرد شیر آزمون دیگر خیزدنی و سپردیدی است خیشت کفولادی که به زنجیدی آویهده است پخلوانان هر کدام سپری در یک دست و خشتی بر دست دیگر دارند و زال نیز از غلامی ترک که به همراه دارد سپری میگیرد و کمان را دور افکنده میزه و جوبینی برمیدارد و با ژوبین چنان بر سپر سه دلاور شرکت کننده در آزمون میزند که هر کدامشان به سوی پتاق میشوند. منو که شاه از پخلوانان میپرسد چه کس آماده ادامه نبعد با زال است پس چند پهلوان همزمان مزی کنان و ریشخند کنان به زال حمله پردی شوند و زال تنومندترین و زوراورت را از پشت زین برگرفته بر زمین میکوبد و دیگران می سپر برگرفتند ژوبین ورایی بگشتند با خشتهای گرنگ سپر خاست از قیدک ترک زال برانگیز اسب و برابر یاد همان را بیافگند و ژوبین گرفت به ژوبین به پار نعایی میگرفت بزد بر سهتا اسپر گیلوار گشاده به دیگر سو افگند خا <تصفيق> کیابت کشان گفت شاه جهان با او که جویت نبرد اسمحال همه برکشیدند گردان سلیم به دل خشت و زبان و به رفتن پیچان انان ابانیزه نیزه و افداد سنان چونان شد که مردن در آمد به مرد برنگی زادس و بدخواست جد. نگه نگاه کرد کاف چیست زیدشان انانکی انان پیچ و گردن کشو نامدار ز گردن درآمد بسان نهنگ، گرفتش کمربند او را به چنگ چنان خارش از پشت زین برگرفت، که شاه و سپه ماند، زود در پهه شاه ایران بر زال آفرین میخواند و پخلوانان ایرانی با صدای بلند خستو می شوند اعتراف می کنند که زال وجود ندارد و هر کس در میدان نبرد باقی با او درگیر شود به زودی مادرش در سوگ او لباس لاجبردی جامعه ازا خواهد پوشید. و آواز گفتند گردن کشان مردم نبیند کسی زیندشا اران کس که با او به جویت نبر کند مادر و او لاشه بعد شیران نزاید چونین نیز گور چه گور از نهنگانش باید شمو خنک سامیل کش چونین یادگار بمانت بگیتی دلیل و سوار و رو آفرین کرد شاق بزرگ همان نام بر مهدران سطح انگاه پادشاه ایران منچه به زال حدایه فراوان داده به نیز نامه نوشته و به او مجده می دهد که با ازدواج زال با دختر مهرا رودابه همراه هست زال با هدایای شاهانه به زابل می دسد. پدر او را به شایستگی پذیر می شد. زال پدر را از ازانچه در پای تخت شاهنشاهی گذشته است آگاه و میز انچا که در نبود زال رخ داده برای او بازگو کرده به زال میگوید کابل از خبر خرسندی پادشاه از پیوند زناشوی تو و رودابه آگاه شده و محراب و سیندخت انتظار ما را میکشند که برای مراسم زناشویی تو و رودابه به کابل برند. زال از پدر میخواهد که بیدرنج راهی کابل شوند تا او در راه بیش و کم را که در آمول گذشته است برای پدر شهر دهد هم با سام بازی در میابد این اشتیاق دیدار رودا است که زال را به شتاب راهی کابل می کند نبازگوی ماجراهای کاخ منجه. به دستان نگه کرد فرخنده سام به کورا در این چیست کار؟ سخن هرچه از دخت مهراب نیست شب تیره مرزال را خواه نیست خبر حرکت سام و زال به کابل و محراب میرسن کابل به پیشباز بزرگترین دلاور ایران فرمان زابلستان سام و پسرش زال میالید احراب و بزرگان کابل یلان و پهلوانان و لشگریان با بوخ و کرناب و تبل و دهل به شاهان ترین ترتیب ها به استقبال آمد زدنای محراب و بربست کوز. بیا راست لشگرد چو چشم خروس عبازند پیلان و رامشگران زمین شد بهشت از کران تا کران زبست گونه گون پرنیانی درفش چه سرخ و سفید و چه زرد و بنفش تو گفتی مگر روز انجامش است، یکی راست خیز یا رامش است. همی رفت از این گونه تا پیش سام ورود آمد از اسب و گام گرفتش جهان پهلوان در کنار بپرسیدش از گردش روزکار شه کابلستان گرفت آفرین چه بر سام و برزال زر همچنین نشست از بر باری تیز رو چون از کوه سر برکشد ماه نو یکی تاج زرین نگارش گوهر نهاد از بر تارک زال زن به کابل رسیدند خندان شاد سخنهای دیدیده کردند یا در آستانه کاخ پادشاهی و کاخی که در آن است سیندخت ملکه کابل به همراه سیصد ست که همه در دست های زردین لپیز از مشک و عبیر دارند به پیشباز سام دلیر و زاه میانه سام از سیندخت جویای رودابه می شود و سیندخت به او می گوید سام دلیر برای دیدن روی رودابه چیست و او را با خود به قصری می برد که رودابه آراست و زیبا در آن انتظار سام و همسر آیندش زاد خندید و سیندخت را سام گفت رو را چند خواهید و به بدو گفت سیندخت حبیه کجاست اگر دیدن آفتابت هواست چون این دا پاسخ به سیندخت سام از من بخواه آنچه آید تا برفتند تا خانه زبنگار کجا اندرو بود خرم بهار نگه کرد آن ماه روی یک کایک شگفتی بماندن دروی ندانست چشم چون ستایت همین برو چش را چون گشایت همین سام شگفت ده از زیبایی رودابه از محراب میخواهد که پیمان زناشوی دو دلداره بسته شده. دبیران دفترها پیش می و به آین و کیچ یزدان پرستان پیوند زناشوی زال و روداوه بسته شده هدایای هر یک دیگری در دفاتر نوشته می شود کابل در شادی جشن زناشوی زال و روداوه را بقا کرده است خروش شادمانی آسمان کابل را فرا گرفته است به فرمو پارخ مهراب، پیش به بندی و آلین و کیش به یک تختشان شاد بنشاندند، عقیق و زبرجد برفشاندن سر ماه با افسر نامدار سر شاه با تاج گوهر نگاه بیاورد پس دفتر خواسته همه نسخت گنج آراسته برو خاند از گنج ها هر بود که گوشان نیارست گفتن شنون آنجا از اونجا به جای نشست ببودند یک هفته با می برست و زیوان سوی پاخ رفتن باز سه هفته به شادی گرفتند ساز سرانجام یک ماه جشن و سرور در کابل به پایان نزد سام با عروس خود رودابه و پدر و مادر او محراب و سندخت پادشاه و ملکه کابل و زال به نیم روز باز می کردند. و در همان روزهای نخستین بازگشت به سیستان حاج پادشاهی سیستان و زابلستان یا نیم روز را بر سر پسرش زال می و خود بار دیگر همراه با بخشی از سپاهیانش راهی گوگساران و مازندران می شود چرا که مردم آن سرزمین با پادشاهی ایران سر راستی و سازگاری نداشتند زمان می گذارد. سام به گرگ ساران است و زال بر تخت فرمانروایی زابلستان تکیزه است دیری نمی پاید که خداوند در نهاد رودابه کودکی را شکت کودکی که بیگمان برای سالیانی بس بلند سرنوشتش با سرنوشت ایران چنان تنگاتنگ بستگی پیدا می که گویی نام و وجودش همه ایران است و نام و هستی ایران همه اوست رودابه چنین امانت شگفتنگیزی را در شکم دارن آن سختی که شب و روزش به سختی و دردناکی و آخ و ناله می و در پاسخ مادرش که حال او را میپرسد به او می‌گوید: زمان من، مرگ من رسیده است می ترسم از این بارداری جان سالم به در نبرم بر نیامد بر این روز کار که سر در آمد نهار شکم کرد فربی و تن شد گران شدن ارقوانی روخش زدفران بدو گفت مادر ای جان ما چه بودت که گشتی چنین زدفار چنین دار پاسخ من روز و شب برگشایم به فریاد لب همانا زمان آمدستم فراز و از این بار بردن نیابم جباز تو گویی به سنگستم آگنده توست مگر زاهن است اینکه به بمیانه سرانجام هنگام زاده شدن این کودک شگفتنگیز فرا می رسند درد چنان به جان رودابه چنگ میزند که او از خوش می روند از پریشانی می و گیسوی خود را میکند و روی خود را می خرد. به زال آگهی میرسد که همسرش زایمانی سخت و دشوار دارد. <تصفيق> چون این تاگه زادن آمد فراز. به خواب و با آرام بودش نیاز. چنان بود که یک روز زو رفت هوش. از ایوان دستان برآمد خروج. خبر شد به سیمدخت و بشخود روی بکندان سیح سوی موشن یک به دستان رسید آگهی که پش شد برگ سر به سهی به بالین رودابه شد زال زرد پر از آب رخسار و خسته دگر همه از رودابه بود. ودک به دنیا نمی آید. و ساقگ مرد بر سر رودابه به پرواز در آمده است زال که خود ترسیده و نگران است ناگهان از سیمرغ بزرگ و پر او یادش می آید مگر آنکه سیمرغ پربرند او به زال هنگام جدایی گفته بود اگر در تنگنایی گرفتار آمدی پر مراد را تشاف کن پس زال شادمانه راز خود را با سیم دوخت مادر همسرش در میان میگذارد و آتشی افروخته پر سی را در آتش مید روززان پر سیم مرغش آمد به یاد بخندید و سیم دخت را مشده داد یکی م مراورد و آتش برود و از آن پررسی مرغ لختی بسوخت همان در زمان تیرگون شد هوا پدید آمدان مرد فرمان روا چون اپری که بارانش مرجان ببرد چه مرجان که آرایش جان ببرد خرافان و بردش نماز بر او جرد زالافرین درست چون این گفت بازا این قم راست به چشمه جبرندرون نمچ راست که این سر بسیم این و سیمین بر ماه روی یکی شیر باشد را نام که خاک قیه او ببوست جبر نیادر به سر برگذاشتن شبهر. از آواز او چرم چنگی پلنگ شبت چاک چاک و بخاید دو چنگ هران گرد کاواز کوپال او ببیند بر بازی و یال او از آواز او اندر آید دل مرد جنگی برایت زجا به خرد سام سنگی بود خشم درون شیر جنگی بود، به بالای سرگ و به نیروی پیک و آورد خشتف بر دومیر نیاید بگیتی زراهه زهرش به فرمان دادار نیجی بهش دیمور به ظالمی میگوید خداوند چنین خواسته است که این کودک از راه زهدان مادر به دنیا نیاده پس برخیز و خنجری آبدیده و تیز بیاور. وانگاه پزشکی کارازموده را بخوان و همسرت را به می مست کن تو خود نگاه مکن اما بگذار آن مرد کارازموده پهلوی رودابه را بشکافت و شیر شرزه تو را از قفس و صندوق رحم مادرش رهایی بخش سپس دستور بده پهلوی دریده همسرت را بدوزن و گیاهی را که به تو میگویم با شیر و مشک بکوب و در سای خوش کن و روی زخم بگذار و یکی از پرهای مرا روی زخم خداوند را سپاسگو باش که چنین فرزندی به تو داده است بیاور یکی خنجر آبگون یکی مرد بین آدل فرفسون نخستین به می ماه را مست کن زدل بین و اندیش را پست کن تو منگرد که بین افسون کند به صندوق تا شیر بیرون کند بکافد توی گاه سر به سهی نباشد مروم راز دردادهی وزان پس بدوزان کجا کرد چاک ز دل دور کن ترس و تیمار و باک یایی که گویمت با شیر و مشک بکوب و بکن هر در سای خوش. به سای و بیالای برخستگیش ببینی همان روز پیوستگیش بر او مال از اون پس یکی پر من خجسته بود سایه فر من تو را این سخن شاه باید بودن به پیش جهاندار باید شدن که او دادت این خسروانی درخت که هر روز نو بشکفنده بعد. بدین کار دل هیچ قمیم مدار که شاخه برون آمد به به گفت یکی پرز بازو بکند فکند و به پرواز بر شد زال زالان پر او برگره برفت و بکردان چه گفته شدت؟ بدان کار نزاره بود یک جهان همه دیده پرخون و خسته روان فرو ریخت از میشه سیندوخت خون که کودک ز پهلو کی آید؟ بود در میان ناباوری سیندوخت و همگان که چگونه کودکی از پهلوی مادر زاده خواهد شد پزشک موبدی فراخانده می شود و دستورات سیموغ را به تمامی به می گذارد بیامد یکی نوقدی کرده دست. مران ماه رخ را به میمه است کرد بکافید بیرنج پهنی ماه بتاوید مر بچه را سرزراخ چنان بیگزندش برون آورید که کس در جهانان شگفت بود چون جوی فش به بالا بلند و به دیدار گشت شگفتن در مانده بود مرد و زن که نشد کست بچه کودک به دنیا آمده است کودکی درشت و تنومند که تا آن زمان کس چنین نوزادی ندیده بود. مادر هنوز از می مست و بیخوش است شبان روزی میگذرد و سرانجام روداوه به هوش آمده با مادرش و سخن میدیید همه شادی میکند و کودک نوزاد را به نزد مادر میآورد روداوه با دیدن کودک میگوید برستم نجات پیدا کردم غم به سر آمد از آن دم در پی این گفته مادر کودک را همگان رستم نامیدند شبان روز مادر زمه خفته بود زمه خفته و دل زخوش رفته بود همان درسگاهش گاهش فرو به دارو همه درز بسپو چو از خواب بیدار شد سرف بون به سندخت بکشاد لب بر سخن برو زر رو و هر برفشاندن عبر ابر را فرین مران بچه را پیش او تاختند به سان سپهری برفراختم بخندید از آن بچه سر به سهی بدیدن در اون فر شاهنشهی برستم بگفتا قمامت سر نهادن رستمش نام پسر. رستم پای در پخنه وجود یا پای در پخنه شاهنامه میگذارد نامی که از این پس با شگفتنگیسترین ماجراها هم را خواهد بود رستم دلاوری که زندگیش برای ایران است و ایران زندگیش شیر مادر برای کودک نوزاد بسنده نیست پس ده دایه او را شیر می و چون او را از شیر میگیرند خوراک روزانی پنج مرد خوراک یک روزه اوست زال در زاول است. و پدرش سام در گرگ ساران و چون رستم به هشت سالگی میرسد چنان برازنده و تنمند و خوب چهره است که آوازه یگانگیش به گوش نیایش سام میرسد و سام برای دیدن نبیره راهی می شد سام در زابل با دیدن رستم خداوند را سپاس گفته بر سر و روی او فراوان بوسه می دهد. آنگاه به پسرش زال میگوید چون این گمان می که زمان من به تنگی رسیده و مرگم نزدیک است او را فراوان پند و میدهد چون این گفت مرزال را ای پسر نگر تا نباشید جز دادگر به فرمان شاهان دلاراسته خرد را گزین کرده برخواسته همه ساله بسته دو دست از بدی همه روز جست رهی زدی چونم دان که بر کس نماند جهان یکی بایدد آشکار و نهان بر این پند من باش و مدزر به جز بر ره راست پند را کرد پدرود و گفت که این پندها را نشاید نخفت سام چندی دیگر نزد پسرش زال و نبیرش رستم میماند و بار دیگر راهی سرزمین های باختری ایران می شود ز درگاه زخم درائی ز پیلان خروشیدن کرنای سپه سوی باختر کرد رو زبان گرم گوی و دلازر جود برفتند با او و فرزند او پر از آب رخ دل پر از پند اوی سه منزل برفتند و گشتند باز که آن سپه بود به راه دراز سام به راه دراز لشکر کشند زال با پسرش رستم در زاول میماند و ما به پای تخت ایران آمول باز میگردیم. روزهای پایانی زندگی پادشاه بزرگ ایران منو چهر فرار رسیده است ستار شناسان از اخترهاد چنین دیدند که از عمر پادشاهی 120 سالی او چند روزی بیش باقی نمانده است پس به او میگویند تخت پادشاهی ایران را تیرگی گرفته است زمان رفتن پادشاه به دیگر سرای فرا رسیده است شاید آن سوی این جهان در کنار خداوند راحت و آرامشی انتظار او را میکشد پس پادشاه باید به شتاب کارهای نیمه تمام را به سامان رساند چون هر آن ممکن است فرشته مرد از راه برسد منو را سال شد بر دوش است، زگیتی همی بار رفتن ببست ستاره شناسان بر او شدند، همی زاس داستان ها زدند، ندیدند روزش کشیدند دراز ز زگیتی همی گشت با باز، بدادند از آن روز تلخایه شد تیران یا رفتن آمد به دیگر سراغ مگر نزد یزدان به هایت جای نگر تا چه باید کن ساختن نباید که مرگ آورد تاختن منو چهر شاه چون از فرا رسیدن مرگش آگاه می شود موبدان بزرگان دلافران و سرداران ایران را به کاخ پادشاهی فرا خانده. در برابر آنان به سر بزرگ خود نوزر را که پس از او پادشاه ایران زمین خواهد شد فراوان پند و اندرز داده به او میگوید بدان که پس از مرگ من دیری نخواهد پایید که ترکان و بازماندگان سلم و طول که آزمندانه چشم تاج و تخت پادشاهی ایران بودند به ایران حمله ور خواهد دوشواری های بزرگی پیش روی تو ایران و ایرانیان است آنگاه در حالی که عشق چشمان خستش را فرا گرفته است و پسرش نوزر او گریت جان به جان آفرین تسلیم میکنه سخن چون زداننده بشنید شاه برسم دگرگون بیاراستگاه همه موبدان و ردان را بخان همه راز دل پیش ایشان برام. بفرمود تا نوزر آمچ پیش برا پند ها داد از انداز بیش این تخت شاهی فصوص است و باد و رو جافدن دل نباد مرا بر صد و بیست شد سالیان برنج و به سختی ببستم میان بسی شادی و کام دل راندم رسمان در اون دشمنان ماندم به فرفریدون فریدون ببستم میان به پندش مرا سود شد هرسیان به جستم ز سلم و ز توب سطور همان کین ایرج نیاه بزرگ جهان ویژه کردم ز پتیارها بسی شهر کردم بسی ها چنانم که گویی ندیدم جهان شمار گذشته شدن در نهان نیازد همین زندگانی به مرد درختی که زن آورد بار از آن پس که بردم بسی در دورنج سپردم تو را تخت شا. چنان چون فریدون مراداد بود تو را دادن این حاج شاخاز بود چنان دان که خوردی و بر تو گذشت به خوشتر زمان باز باید گشت نشانی که ماند همی از تو باز براید برو روزگاری دراز نباید که باشد جز از آفرین، که پاکی نجاد آورد. مگر تا نتاوی ز دین خدا که دین خدا یاورد پاک را تو هرگز مگرد از رقی ایزدی که نیکی از اویست و هم بدی و از آن پس بیاید ز ترکان سپاه نهند از بر تخت ایران کلا تو را کارهای درشت است پیش یهی گرد و فرود آمد اوا بشکرود همیزار بگریست نوذر بر دو چشم کیانی به هم بر نخواهد بپشمرد و برزد یکی صح با شد آن نام بر پرخونه شهر به بگیتی سخن دان از یاب در شاه شاه بزرگ چشم بر جهان فرو می‌بندد دوران شگفتنگیز و پرماجرای دیگری در کشور بزرگ ایران به سر می‌آید فصل دیگری از کتاب بزرگ تاریخ ایران گشوده می‌شود بر پیشانی این فصل نام نوزر نوشته است نوذر پسر مانوچه شاه جانشین مانوچه شاه نوذر آیا او شایستگی نگه داشته میراس بزرگ پدر خویش را دارد؟ آیا نوزر به راه پدر و نیاکان میرود؟ آیا پندهای آخرین دم زندگی پدر را به کار خواهد بست؟ بدون تردید روزگار نوزر روزگار شگفت. سراغاز دهشت بزرگ سراغاز تهاجم تورانیان به ایران است سراغاز سالهای توفانی زندگی ایرانیان پس از گذر از آبهای آرام دوران پادشاهی منچه، به دریای توفان زده حوالس دوران پادشاهی نوزن بسند آیا اون ناخدایی برستم این سکندار بزرگ او چه خواهد کرد او در نبرد در نبرد با انواج محیب حوادث چگونه دست و پنج نر خواهد کرد سام نریمان، زاگ، گودرز بزرگ، کی، کاوه، گرشاسب، قباد نیرومند بر سر نامها چه خواهد اگر خداوند این راوی را نفس باقی گذارد، پاسخ همه این پرسش ها را در روایت های پس از این برایتان باز خواهم.